تفسیر برهان جلد یک صفحه دویست و چهل و چهار از امام باغر پرسیدن الله و ولی و لذین آمن و یخرج و همن از ظلمات و لذین کفر و اولیاء کفر ورزیدن سرپرستاشون میشن طاغوت وقتی طاغوت شد یخرجونهم من النور الی تسلمت به جای اینکه اینارو برن تو نوری نرن برن تو ظلمات به جای که آزادی واقعی به نابیدن آزادی شعوانی میدن این یعنی چی ان الباقر علیه السلام و کفر کفروا ای کفر کفروا به ولایت علی ابن ابی طالب اولیاءهم طاغوت نزلت فی اعداء علی ابن ابی طالب یعنی وقتی علی رو نفزی رفتن میرن سراغ دشمنان علی و من تبعهم و کسی که تبعیت میکنه از دشمنان علی اخرج الناس من النور این مردم را از نور خارج میکنن و نور ولایت علی فسارو الى ظلمه ولایت اعدائه اگر نور است پیروی ولایت است و اگر ظلمت است پیروی دشمنان علیس، اگر رفتن سراغ علی و آل علی در جامعه نورانی وارد می شوند. و اگر رفتن سراغ دشمنان علی جامعه ظلمانی تیره شهوانی پیدا می کنند.